بلندتر بخونیم یه ذره هم بیشتر با تنین که از بعض توی م... از بعض از رایش که از رایش توی نیخاها؟ نیخاها کیان؟ بله شانشینگو کافو زد آب. به بعد از آتش، به خاک و جاب. همانا کی از؟ به خاک و جاب. میدیم که کاما گذاشته یعنی این میره به دنبال بعدی میشه. به و جاب. به بعد از آتش، به خاک و جاب. جاب همانا نکرده. همانا کی از؟ همانا کی از؟ نکرده استرس. مگر خود به سهرت به گذیمه کشت به گذیمه کشت که چندین به سادن خیمان کنند به خوبی زمان را گرفان کنند چو گرد آورد مظلم آورد از من نباید شدم که روز مگر کنم نامی رو از جهان رو گرنه از کمان ناگهان ناگهان سپه ساد و دستاد ایران کند بسید دینده رو بونی بایران کند و دو رفت موبد که چندین سپا خود باید تداوات تداواتگاه چرا باید ده در گنج در گنج میشه باید کجا در گنج در گنج پهلوانی کنون پهلوانی هنون بحلوانی نگفت رو مدیدیم دا داوار جنگ و سرکتیم شنین داد پاسخ با دیشان که من نبینم همه کس دارین انجمند کتا دا از هایو تا به افراسیات مراقص باید چکشتی براید شما باز کردید تا من کمان دو تیشنگ و در ميمد. یاوش از آن دید پرندوشه <سله> کرد او آن را از آنگیشه <مشای> چون بیشه کرد و دل را من خواهدم این در دیدار و کربی <مشای> بگویم به خواهند بشا مگر که هم را <مشای> کم، که هم میشه کم مگر کم رهایی ده حدا کرد به سودا و گفتگوی خبر و دیگر خودین تا نام آرم این دشکری را به دام آرم بشد با کمت بشد بشد با کمت بشد که اوز شا با دو گفت من دارم این پایدا که باشا بیتوران بجوی مدر سر سراران من دارم بگرد چون این دود رای جهانا پرین که رای جان سپاره به توران زمین به توران زمین برای و برندیشه این آباکار بسیار در این ماجره بودن شاه میخواست سودابه رو بکشه سیابهش که میدونست که شاه دوست داره این زنو گفت به من ببخشینش ولی میدونست که سودابه برکنه معامله نیست و هر حال دائم تحریک میکنه است که فکر که اتفاقی می‌افته و او از دربار دور بشه در همین فکر بود که یه حادثه ای هم استفاد افراسیاب آمد به طرف خاک ایران و از مرسای ایران گذشت. به مهرندرون بود شاه جهان من نمیدونم این به مهرندرون بود یعنی چی ممکنه یعنی در ماه مهر بود یا در حال مهربانی بود درست نمیدونن. به هر جهت میگه شاه در مهر بود. که کارا جهان یعنی از کسانی که اطلاع داشتن از مسائل این طغشنی که بشنید گفتار کارا جهان که چی؟ که افراسیاب آمد صد هزار ترکان سواج بس نمیگه صد هزار شمورده با صد هزار چیه؟ میبهیقم هزار در که بگن ممکنه این عدد نباشه قید کثرت باشید سکه بیاه صد هزار آدم تو این مجون جلو بردی جمع این بسیار آدم وقتی میگه 100 هزار شمرده یعنی نهادون 9000 به اضافه 1000 هغیفه دام 100 هزار سر سوار مقصودشونه که دیگه اینجا تیکی استاید کسرت نیست عددی داریم که افراسیا وام دو 100 هزار ز زتورکان این کلمه هم که حالا می‌خونیم شمرده باید بخونیم درستش هست شمرده چرا؟ برای اینکه شماره دیگه شمار درسته شمار شمار اون آش اگه بخواد مخفص بشه شمار باید بشه شمر. شمرده این صحیحش ولی خب ما چون زبونمون نمیگرده میگیم شمرده برای اون راحت تره ولی کلمه اصلش سوارم اینجا به معنی جنگجوه در حقیقت برای اینکه ممکنه هر ست واقعا سوار نبوده باشن درسمم پیاده باشن اینجا سوار که میگه یعنی سپا یعنی جنگی در زن قبلا ارز کردم چند بار که فردوسی تورانیانم میگه،, میگه ترکان نه ترکان نیستن تورانیانم از قبائل آریایی هستن منطقه های قدری در تمدن اینا پایین تر بودن هر قدر به طرف مرکز ایران می آمدن. به دلیل اینکه که نعمت و ثروت و محصولات و اینا بیشتر بود تمدنم بیشتر افغانستان جای خیلی خوبیست خراسان البته تمام افغانستان رو می خراسان بزرگ که میگفتن تمام اون نایب بود اینجا بهترین محصولات دنیا رو داشت و هنوز هم داره هنوز در مشهد حلویی که هست من در هیچ جای دنیا چون این چیزی نید خیالم نکنین که خیلی قیافه یک نمیدونم مهم میداره قشنگ یا انقدر ابدا در دفنه که میدین نمشه حلوی اونجا تو جعبه هست که بعضی ریستر بعضی درستر حلوی عادی ولی این حلوی رسیده اینو وقتی شما میخورید میبینید این مذهی دارید که اصلا در عمرتون چنین این مذهی حس نکردید و باید برد و اونجا بخوره فرق باشد بفن باقیه میباش تو. اکثر شهرهای خراسان به داشتن انگورای نظامی عروضی میگه در هرات انگور بوده که خوشش پنج من وزد حالا من یک کلو بگیرد بازم و میگه که مثل چراغ میدرخشه درشت و بدون هسته و با پوست خیلی نازم و سایر هاش همینطور اینجاها تون نعمت زیاد میده مردمی که اینجاها میامدن بیشتر متمدل میشوند مردمی که در مواهی ریزار زندگی سخت بودن با زندگی سخت عادت کرده بودن و قارتگری و سوارکاری و عرض که ورزیده و دنبال زحمت و اینا این است که جنگی تر بودن و بیشترین کارشون این بوده که بیان این قسمت معتمده تر یا اگر بتونن بیان اینجا اما اینکه که تمام تاریخ ایران و چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام رو مطالعه کنیم می همیشه از سمت مشرق از سمت ریگزارهای آسیای میانه هی به طرف این ناهیهی حاصل تیز. یعنی افغانستان و قسمت شرقی ایران خراسان و سیستان و یه قسمت از پاکستان و اینا تمش از اون طرف حجوم میوردن این طرف این اون گشنگی بوده این بر نعمت این هست که تورانیان قبایل آریایی بودن ولی در سطح تمدن فاینتر بودن و دائم دعوی داشتن با ایرانیان و اینا و درد و سی خیال می‌تونه اینا در حالی که با چند بارم گفتم، چند بار اینجا گفتن ترک که در شعر فارسی میاد به این نایت که حالا اینجا می‌شون میگن ایژیان یعنی نجاد جلودایی که ترکیه و نمی‌دونم آذربایتون رو اینا ترک نیستن افراد. اینا این زبان ترکی بعدها آمده اونجا هاست مونده ولی ترک ها از نژاد زردن در حقیقت چافه تنگچشمو هستن برجت فردوسی میگه ترک هم ولی اینا ها ترکی هستن تورانی هستن مغلا که همه کردن به ایران که ترک ها رو اغوردن با خودشون نه رفتم اگه آزربایی جن نه رفتم بره نه اونا قبل هستی اگر مخصوب اونا قبل هست قبل هست مغلا بلی بلی بل. یه تایف های ترک هم هم بودن که سلجوگی ها سلزرویان در ایران تولک بودن سلزرویان در ایران حکومتی تشکیل دادن که مرکزش اسفحان بود سمت مشرقش تاجیکستان فعلی بود مقربش هم دریای مدیترانه بود به این بزرگی و برسالانو ملک شا اونه من کاتران سلزروی که اسفحان معروفه اینا یه چنین ممرکتی رو داشتن و خاج نظام و و وزیر معروف یه چنین ممرکتی رو اداره میکنه. اون وقت اینا یه شعبهای ادیشون به نام اتاقک، اتاقکان، در نواحی مختلف افغانی پدید شدن. اتاقکان فار، اتاقکان کرمان، اتاقکان لرستان، اتاقکان آسیای صغیر، اتاقکان آذربایجان، اینا همه زبون کرد. و نه این ترکیه تابری، ترکیه ترکمان سر. این یعنی زبانشون ترکمانیه. به همین دلیل الان یه ترکمن از ایران یا اگه ترکمن در افغانستان هم داره برن استانبول هیچ مشکل زبانی ندارن در حال که تبریزی بره استانبول خیلی مشکلات داره و اون اون اینا قبل از مغول رفتن ولی خب مغول عمل کرد که چهار روسیا اومد و 100 هزار گزیده از ترکان شمرده سوار دل شاه ساووس از آن تنگ این اوقاتش ترس شد اینجا دلش تنگ شد یعنی اوقاتش ترس نه این به معنی امروز که قصه یعنی اوقاتش ترس شد که از بعض رایش توی جنگ شد برای اینکه مجبوره حالا بعض ما ایش و ایشترس بذاره بره طرف جنگ یکی انجمن کرد از ایرانیان معمولا همیشه همین یه شورا تشکیل میدن از کردمندان که ببینن نظرشون چیه یکی انجام کرد از ایرانیان زه هر که بود نیک خواهی کیان از کسانی که طرفتار من بکرددن طرفتار پادشانی کیان یعنی که کافیسی نمودن انجامنی کرد و این طور بهشون گفت پدیشان چنین گفت کفراسیاب کسی باد و زه آتش زه آب هم که از آن نکردش پرشت مگر خود سطهرش دگر کن میدونید که همه عالم رو قدما معتقد دارن که از چهار عنصر تشکیل شده و به نظر اونا این چهار عنصر عبارت مید از آتش و باد و کاف و آف که عالم از این البته زمین از این چهار عنصر تشکیل شده و هرکم روی زمینه باز از همینه تشکیل شده و اینکه انسان بالاخره یا علف میخوره، یا حیبون میخوره که حیبون باز علب خورده، بنابراین باز خاکه من چهرشم پس میشه گفت آدمم هم از همین چار انصر تشکیه اینجا کابوس میگه که مثل اینکه خداوند یا سپر افراسیاب از این چهار انصر درست نکرده برای اینکه به هیچ آدمی شبیه نیست و رفتار اشخاص دیگر رو نداره حالا میده بدید چه دیشان چون این گفت کفراتی آب ز باد و ز آتش ز خواب و ز آب همانا که یزدان نکردش درشت همانا هو مانا مانا یه وقت کلات کلاس از مانستان من حرف زدن مانستان مانستن رهنی شبیه درست یادتونه؟ یاد مانا میشه صفت فایلیش یعنی شبیه هورم یه وقت گفتم که معنی خوبه درسته؟ پس ها مانا یعنی خوب ماننده نیک ماننده یعنی کاملا مثل این هست. کاملا این همانا که یزدان نکردش سرشت از اون چهار اونطور مگر مگر قید تردید اینجا منی شاید مگر خود سفه دگرگونه کشت حالا میگه چرا میگه مثل اینه که افراسی ها با یه جور دیگه ساخته این خدا و این سفه چرا که چندین به سوگن پیمان کند به خوبی زبان را گروگان کند تو گرداورد مردم جنگ به تابت پیمان و سوگن جون نیگه دلیلش این است که انقدر با سوگن با قید قسم پیمان میبنده زبان یعنی زبان به و به هم بدر میشه همین الان پردا همین حالا میگن زبان به جای زبان زبان را به خوبی گروگان کند یعنی قول میده که من خوب میکنم کار خوب میکنم دیگه نمیکنم کار بد نمون به محض اینکه که چند تا مردم را جنگ رود رو باره گرد آورد تو مردم پیمان و سوگند سوگند و پیمانشون میشکنه بعد دنبال این حرف میگه که فقط من خودم باید برم کسی جز من نمیتونه بره به مقابله با افراسی البته یادتون هست که چند بار ایشون تشریفتون بردن و هر بار موسیعی بالا بردن یه دفعه تشویق بردن مازندرمون اونجا گرفتار دیو سفید شدن و دیو سفید به علم سهر ایشون رو نابینا کرد و روستان ودبخ خلند شده از اون دارستان اینا نجاست یه دفعه دیگه تشریف بردن به هاماوران که همین داستان و سودابه و اتفاق افتاد و مدتی در زندان شاه هاماوران بود باز رستن و عد بلند شد نجاتش داد حالا باز دوباره میگه نه من خودم باید برم مثل که تالا خیلی کار مهم کرده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جز از من جز از من نباید شدن کی نخواه کنم روز روشن بر او برد سیاه. میگه کسی جز من نباید برست سراغش و من روزش رو سیاه میکنم. مگر کم کنم نام او از جهان. یعنی شاید بتونم اسم او رو از دنیا قرد دارم. یعنی بکشمش. اگر نه چو تیر از کمان ناگهان سپه سازد و ساز ایران کند بس ایز این برای او بیرم کنند. میگه اگه این کارو نکنم ممکنه که بعد دوباره از سر سپاهی بسازه و دوباره بیاد سراغ ایران و بسیاری از این منبکت رو دوباره خراب کنه بوم، بوم به معنی سرزمینه حالا اون آقای موبدی که مشاورش بوده اشاره به همین میکنه که خور اون هم دخواهی که رفتید بسیدی حالا اجازه فهمید یک دیگه بره این ساز ایران کند یعنی یعنی <متحق> آماده بشه برای ایران میگه ساز یعنی ساخته بشه <متحق> بدو گفت که چندین سپاه چو خود رفت باید فدا چرا خواست داد باید بباد در گنگ چندین چه باید کشاد اول این فدا و بگم این به حرف اضافه در پهلوی بوده پت پت این پت آن گاهی اون تش افتاده در فاسه شده به گاهی هم پت شده بد, بد، بدین، بدان، بدو، به بدان به به دو به جایی به او صدقه دیگه چیکه به دین، به دو اون ته، پته، فهلوی تبدیل شده به دال، به دین و به دان بنابراین به داوردگاه یعنی به آوردگاه فرق نیست مثل به دین و بدان دان می‌مونه درست شد؟ حالا میگه موبت بهش گفتش که اگر خود شما می‌خواد برید به جنگ دیگه این همه سفاه چرا؟ این همه خرد چرا؟ این همه در خزانه را باز کردن چرا؟ چرا خواسته داد باید به باد؟ خواسته برنی مال و گفتم قطعا. در گنگ چندین چه باید کشاد؟ بعدم به یادش میاره دوبار این سر نام ورگاه کش سپردیز تیزی به بدخواستیش گاه برنی تخته چیزی هم به معنی عجله کردن و تصمیم ناگهانی و بدون عقل بدون فکر گرستن میگه حالا دوبار این تخت رو روی عجله و روی بیفکری دادی دست دشمن دوبار این سر نام و گاهیش سپردی به تیزی به بدتاقی میخواد بگه حالا هم دوبار دیگه بحث کنون پهلوانی نگه کن گزین یه پهلوان برگزیده‌ای رو در نظر بگیر نگه کن یعنی منظور در نظر بگیریم یعنی نگه کن دیگه نظر در نظر بیگیین یعنی نگاه maksud کن. انتخاب کنه کنون پهلوانی نگه کن گزین حالا یه پهلوانه برگزیده‌ای رو انتخاب کن سزاوار جنگ و سزاوار کی که شایسته جنگ کردن ماشه. جواب میده که من کسی رو نمیدینم در اینجا که توانای مقابله و بر روی با افراسیاب رو داشته باشی. چون این داد پاسخ خودیشان که من نبینم همین کس بر این هنجمن که دارد تی و تاب افراسیاب، من را رفت باید تو کشنی برایم. به معنی پاست. پا, پا معنی مقاومت دیگه. میدونید پایداری کردن پایداری یعنی مقاومت. تاب هم یه معنیش که دهتا دا معنی داره گفتم چند بار تاب به معنی داختادن و تابیدن و نمونه چه خوچه یک چند معنی توان و قوت قدرته. تاپ ندارم، این دیگه قدرت ندارم، قومه ندارم. میگه من در این انجامه کسی رو نمیبینم بینم که پی و تاپ افراسی آب رو داشته باشه. بله. مرشون این از این دیگه این طاقت نداری؟ بله. که دارد پی و تاپ افراسی من رفت باید تو میگه خودم باید برم. کسی رو نمیم بینم که قدرت این رو داشته باشه. ولی باز برای اینکه در حقیقت اجله نکنه میگه خب حالا بریم که منم یه ذره فکر کنم در این باغ شما باگردید تامن خونون بپیچم یکی دل بر این راهنمون دل رو بپیچم یعنی یه خورده و فکرنمون مشغول کنم به این کار شما باز گردید تامن خونون بپیچم یکی دل بر این راهنمون یعنی یه در این باغ فکر ظاهرن در اون مئله سیابوش هم بوده دیگه سیابوش ولی بوده پهلوان در جعبال بوده جوان شاداده مهمی بوده بوده دیگه سیابوش از این دل پرندیشه کرد روان را از اندیشه چون بیشه کرد بیشه جای درخت دیگه دیگه میگه این فکرش، این روانش مثل جنگل که پر درخته اینم پر فکرای مختلف محفوظش میگه سیاهوش از آن دل پر اندیشه که روان را از اندیشه چون بیشه کرد یعنی خیلی فکرای موناگون آمد به مردش به دل گفت من سازم این راز میگه آه با خودش گفت که بهتر من برم اینجا به چربی بگویم بخواهم دشا چربی هنوزم هست میگن زبون چربونر میدارید یا چربزبانه چرب چربزبان یعنی آدم پشتزبونی که میتونه قانه کنه اشخاص به چربی بگویم یعنی با با لطف و با, با... مهربانی و به یه ترتیبی بگم که شاهم قبول کنه و این کارو از شاه من بخوام که من برم بده گفت من سازم این رازگاه به چربی بگویم بخواهم ز شاه مگر رهایی رحاید حضاقگر به صوداقه و گفته پدر شاید که خداوند من منو از دست این سودابه و از این حرفای پدر میخواد از دربار دور باشه و از مرکز تحریکات این کم دور باشه چون هر روزی کسی رو با میداشت و یه چیزی میگفت و یه خالی چاخ میکرده اینه که میگه یکی از پادشاپ میخوام که برن یکی این که دور باشن از, از سودابه و از گفته پدر اینا دور باشن او دیگر از این کار نام آورند این کار مهم نیست نام گفتم چند بار به معنی اسم که هست هست به معنی شهرت نیکو هم هست یعنی اگر این کار من بکنم با مفقیت با، با برام اسباب شهرت هم هست. و دیگر که از این کار نام آورند چون این دشکی را یعنی دشکر افراسیاب رو به دام آورند بشد با کمر با کمر اینجا با لباس رسمی. یعنی در حال رسیم بشد با کمر پیش کاغوز شاه بدون گفت من دارم این پایگاه که با شاه توران به دوگم نبرد سر سردران اندر آرام بگرد این کار اولش شاه توجه میکنیم که و الان سیاوش رو رفتم پرورش داده در کارهای نمایشی همیشه درجی یک بوده ولی کار حساسی این اولین کاریست که مطرح شده در ممرکت و این درده دافتالات میشه که من میرم در موله کار. کاریم بشد با کمت پیش کابوسا به دو گفت من دارم این کائگاه کائگاه یعنی درجه و مرتبه که با شاه توران به جویم نبرد میگه من این طاقت و این درجه و این توانایی رو دارم که با شاه توران جنگ کنم سر سروران اندارم بگرد یعنی سروران رو شکست کدم رو خاک بیارم حالا این دو بیت مال خود فردوسیه. میگه که غذای کردگار غذای پروزگار این بود که اون در سوران جان از دست کنید چنین بودرای جهان آفرین، حالا هنوز هیچی نشد ها هیچی نید اصلا شروع هم نشد اون قسطه قعصاموینام او به خوبی و خوشی گذشته کنید میگه چنین بود رای جهان آفرین که او جان سپارد به سوران زمین رอยو اندیشه نابکار کجا باد کردت بعد روزگار میگه بعد روزگارم که اومد دیگه برکه نمیگرده هر چی فکر کنی هر چی اندیشه داشته باشی اندیشه خیلی نابکارم داشته باشی خیلی اندیشه موثرم داشته باشی بعد روزگار بر نمیگرده این دو بیت مال خود است، یعنی نظر خود فردوسیه روز داستان نیست شاعر خودش نظر میده بعد دوباره میره سر مطلب خب یکی بخوانه بخوان سجان کار همدازتان شد پدر که بندر سیاواش برام کین کمن از او شادمان گشت و به این به نوعی یکی به نوعی؟ به به نوی یکی پایگه هست داختش به دو گفت گنجه گوهت تو تو گویی سپه سر به سر خیش تو ز گفتار و کردار و از آفرین که خوانند نه نه میگه که این دنبال اون بهیت قبله میگه مثل اینکه که همه چی مال تو هستن چرا دلیلش است که ز گفتار و کردار و از آفرین که خوانند بر تو از ایران طبیب میگه این رفتاری که مردم با تو دارن و این آخرینی که من همه مردم به تو میگن مثل این این همه این ممتیقات مالک رو دارن به گفتار و کردار از آخرین که خوانند و تو از ایران دارن گبه پیوتن رو برای خیش خواند بسی داستان‌های نکتو براند به گفت همزور تو نه همزوره به گفت همزور تو پیوتن دیرش یه خط این دایره بکشین یعنی این دو تا هم مربوطی اونجا عدد باید میذاشته جدار کرده ولی یکی روی همزور تو, تو پیل نیست هماننده رای تو نیو نیست خردمند و خاموش توی؟ تویی تویی؟ بگی تی خردمند و خاموش توی که پروردگار سیاهوش توی چو آهنده بندد به در گوهر گشاده شود چون تو بستی کمست سیاوش بیامد کمر کمر میان سخان گفت با من چو شیر ژیان بخواهد همین جنگ افراسی ها تو با او برو روی از او برمزا چو بیدار باشی تو خواب بایدم چو آرمیده باشی همون آرمیده است آرمیده باشی تو آرمیده باشی شتا بایدم جهان ایمن از چیز ایمن ایمن تیز شمشیر تو جهان ایمن از تیز شمشیر توست سر ماه برچرخ در زیر توست تهمتن به دو گفت من بنده ام، سپان هرچهگویی سراینده ام پناه و روان من است در تاج و آسمان من است. تو بشنید از او آپین کرده گفت که با جان پاکت خرد با جو <تصفيق> برای آمد خروشیدن نای کوس بیامد آمد تو. به درگاه انجمن شد سپه در گنج و دینار بخشاد ز شمشیر و گرز و کلاه و کمر هم از خود و در و تنان و سپه به گنجی که بود جامعه جامعه نابرید پار پارچه, پارچه. فرستاد نزد سیاوش کلید که برخواان و برخواسته که خدای تویی ساز کن تا چه آیت را؟ گزین از اوان نامداران سوار دلیران جنگی ده دو هزار ببین زیر دال دلیران ا گذاشته درس. این معنیش هم اینه که قسمت اول این کل من همون دله دلیل نمی دل آقا یعنی کسی دل درد، یعنی طور از شد پهلوه هم از تحلق پارس و کوج و بروژ زگیلان جنگی و دشت ساروژ سپرورد پیاده ده و دو هزار گذین کرد شاه از در کاردار از ایران هران کس که گوزاده بود دلی و خردمند آزاده بود به بالا و سال سیاوش بودن خردمند و بیدار و خاموش بودن زگردان جنگی زگردان جنگ... جنگی و ناماوران چو بهرام و چون زنگی شاوران همان پنج نوبت از ایرانیان همان پنج نوبت از ایرانیان برفراختن اختر کابیان بفرمو تا جمله بیرون شدن ز پهلاف سوی دشت همون شدن سوی دشته همون شدن تو گفتی که اندر زمین جای نیست که برخاک اون نهر را پای نیست سر اندر سپه اختر کاویان چو ماه درخشنده اندر میان ز پهلو برون رفت کاوز شا یکی تیز برگشت گرد سپاه یکی آفرین کرد کرمایی کی که ای نام داران فرکنده پی مبادا جز از بخت همراه جز از مبادا از بخت همراهتان شده تیره زیدار بدخواهتان به نیک اختر و تندرستی شدن به پیروزی و شاد باز آمدن بسیار سیلن بسیار حالا اینجا حالا بعد در قسمت بعدی که بعدها می کنیم کابوسی سفارش هایی یک سیاباش می کنیم هم بر طبق همون سفارش عمل می بعد گزارش میدن به شاه، می‌کنه قلط کردیم، کرد این پسرش کار کرد عده‌ی که گروگان بگیر این‌ها چی‌تو این‌ها مصالحه کنی این‌ها بر می‌گیرن می‌گیر که دستی می‌داد این‌کار کرد می این‌کار کرد این‌تو قلط کرد فوراً هر چه مال از این‌ها گرفتی به عنوان گروگان بزن اونجا آتیش بزن یا یه آدم‌ها رو هم که گرفتی بفرست من دارشون بزنم سیاوش ه به <تصفيق> کار همداستان شد پدر همداستان شدن یعنی موافقت کردن خیلی فردوسی زیاد به کار در مورد اینکه که میگه ابلیس هم رفت و زهاک و گول زد که پدرشو بکشه بعد فردوسی میگه به که پدر گشت همداستان یعنی موافقت کردیم به این کار هم داستان شد پدر که بندت سیاه بران برای کمر کمر بستن برای کاری یعنی آماده شدن قبلاً از او شادمان گشت و بنداختش به نوبی یکی پایه ساختش اگر یادتون باشه گفته بود که چیز زمین کورستان و پادشاهیشو داده به و به و رو تب تو تا جوگه یه یعنی مثال درجه بهش داده میگه از این داغ که هست و این کار خیلی خوشحال شد کابوس و درجه دیگری هم داد به نقبی یعنی جدیدن یکی پایگه ساختش یه مقام دیگه بهش داد بدو گفت گنج گوهر پیش تو گفت همه چی دست توه تو گویی سر به سر خیش توست، دوستش داشتن سیاهاش کریزما داشته دیگه، همه دوستش میدید، هر کس میدید، دوستش می داشت. به دو گفت، گنج گاهت تویش توست، تو سر به سر خیش توست، سه گفتار و کردار و از آفرین که خوانند بر تو از ایران زمین بعد سیاوش خود جوان بوده و بی تجربه بوده به هر حال این کارهای مقدار زیاده هم تجربه نمیخواد فقط زور بازی که نمیخواد که اینه که رستم رو هم همراهش بود پیلتن را برای خیش خاند پس این داستانهای نیکو براند رستم رو خاص لو خودش پرکای خوب بیسته بدون گفت همزور تو پیل نیست تماننده رای تو نیل نیل نیل رود معروف که می‌دونید من نمیدونم این هم می هم می‌دونید من نیل هر سال در روز معاین و در ساعت معاین تو بیاند. این بینه آبش یواش یواش یواش یواش, یواش میاد بالا تا لفت به لفت می‌شه بعد روی در قسمت بزرگی از زمین های اطراف رو و قبلا خدمتون بگم که در خاک مصر شاید مثلا ده سال میداره یک قطره بارون نمیاد یک کنش و طبعا چنین جای جای زندگی نیست دیگه تنها وسیله زندگی این رود نیله رود وقتی آبش پایینه که نمیشه ازجاه استفاده کرد منطقه این رود نیل این کاسی که هر سال گفتم در ساعت معین شروع میشده به آبش بالا اومدن و میزده اطراف رو میگرفته یه مقدار رسوبات و گلولای بسیار حاصل رو زمین می داشته بعد کم کم به معاید معین می‌رفت پایین. و اون وقت روی اون گلولایی بوده که اینا پنبه می‌کاشتن و محطول می‌کاشتن و هر سال هم دیگه نه چود می‌خواست، نه چیزی می‌خواست نه آبدادن می‌خواست و در حقیقت هر سال مایه زندگی این مردم رو رود نیل می‌عورده حالا علت اینم براتون بگم شاید بازم بیفایده نباشه رود نیل یکی از درازترین رودهای دنیا یا شاید درازترین رود دنیا هستن از مرکز افریقه از چاد و از اون کوهستان های های مرکزی شروع میشه و در اونجاها در نواحی استوایی بارونای سیلاسا بارونای خیلی شدید هست که موسمی هم هست اون بارونا روز معین در هند هم, هم هند روز باروناش معین از که از شروع میشه و این فصله سالی و بارون تکه ایلان تیمه این بارون های سیلاس های موسمی میاد اونجا رو تونه کوهستانی و تنگه آب به مقدار زیاد بودی میشه. ولی بعد از این کوهستان دشت صاف اون آب که اینجا تو نیل، نیله دیگه دنباله این آب که میاد مجبور از اون تنگه ها کم کم وارد این رود نیل بشه و اینجا اون سرعتش رو از دست میده و خورد, خورد خورد خورد خورد چیزی کف آب سطح آب میده تا میاد و عرض کردم اون گلولایی که ترافیگه از کوه و دشتوینا همه رو میاره و جا میذاره دونجا این از که برای نیل قربانی ها میدادن او رو پرستش میکردن ارزمونم که یک ستاره ای هست اینست این که اسمشم بردم شعرا یمانی گفتن ش سیریوس. نورانی ترین ستاره نورانی ترین در حقیقت ستاره نه پلانت سه آسمان ما و این بالا آمدنش از افق مصر همزمان بوده با شروع شدن تقیان و همین دلیل این سیریوس هم فلی پرستش می و داستان های زیاد در باید شهرهای یومانی دارن این تفصیلات و به نیل قربانی انسانی حتی می دادن دختری رو در آب قرق می آدمی آدم رو حالا به سر دختر نمی دونم داشته اینا همه برای این بوده که تمام زندگی این مردم بستگی داشته به این رودخونه و این طغیانشگیه در حقیقت رود نیل مایه برکت و مایه زندگی بوده اینه که از قدیم هم اینو می دونستن هماننده تو نیل لیند یه دنیلم با به انوازه تو و فکر تو برکت ندارید به دوبه همزوغ توپیل نیست تمامنده رای تو نیل نیست که خرطمند دو خاموش توی یکی از خصوصیات خرطمند همینه که زیادیت ندارید فنابراین اگر دقت میکنید بنده عقل درستی ندارم شوق مورد دادن قرار بدم <صحان> هرست کنم که سعدی میگه که نادان را این, این را یاد میدید این از این که باید این یاد میدید و یادتون نره یعنی درس واقعی اینه میگه نادان را هیچ مصلحتی به از خامشی نیست مال سعدی نادان را هیچ مصلحتی به از خاموشی نیست دنبالش خیلی جالب و اگر این مسلهت بدانستی نادان نبودی میگه <تصفيق> هیچ مسلحتی برای نادان از خاموشی از سکوت بالا نیست و اگر این ممس میدونست دیگه نادان نبود نادان راهیش مسلحتی به از خاموشی نیست و اگر این مسلح بدانستی نادان نبودی. خیلی، این فاپ و گلستان مطالب اینجوری خیلی داره و فوق العاده اینا مهمه این, این مطلبیست که همچه که بعضش رد میشه ادم خب رد شدید، هر چیستی ساویه هرکایی ولی اگه سعی کنه آدم این رو بهش عمل کنه نصف مشکلات زندگیش حل میگه اگر جور شکم نیستی باز این هم اگر جورش کم نیستی هیچ مرغ در دام سیاد نیافتاد تا سینگه دیگه مرغ که به دام میفتن من دونه بخورن دام میگیره اگر جورش کم نیستی هیچ مرغ در دام سیاد نیافتاد بلکه سیاد خود دام ننهادی <تصحیح> میگه سیادم که دام میذاره من طورتی کم اون همه خودشتان خودشتی میکنه که آموزگار یعنی آموزنده که فروردگارم یعنی پروشتن بعد حالا اصطلاح داره خدا اما اینجا اون معنی نیست اینجا معنی درست بشه در ضمن به شما بگم که در تمام شاهنامه رستم فقط یک نفر خردی داشت اون هیچ کس دیگه ای حتی پسرش خودش تربیه تنها کسی که پرورده دستی رو نه فقط از پهلوانی بلکه از حقل و تدبیر و اینا سیاهش بگی تی خیراتمند و خاموش توی که پروردگار سیاهش توی من ای بیت ای بیت ای این بیت دوم میخ بیت وعدی رو میخونم برای اینکه درست بخونم ببینم شما کدومتون میتونید معنی کنید چا آهن ببندد به کاندار و هر گشاده شود چون تو بست یعنی چی هر کی برو من درس به خاطر که آهن در معدن در معدن گوهر رو ببندند تو آهن به کاندر گوهر تو میگیرن معدن ببندند باز کنی اگر کی این مشکل زیادی نداره که اگه مثل آهن بسته باشه باشه <تصفيق> کله همسون گچه خود را به کار بمیدیم یه ذره نزدیک شدی این مثلا خیلی ساده است میگه وقتی که آهن در معدن جلو گوهر گرفته باشه شما ده استخراش کنن دیگه این کردن سخت هم هست مشا طایم وظیفه خاره اونها باید برن تا اینو در بیارن میگه آهن وقتی جلو گوهر گرفته باشه در معدن بهنده قائلش آهنه وقتی که آهن در کان گوهر رو بسته باشه این جلوش گرفته باشه درست شد وقتی تو آماده شدی تو کمر بستي گشادی این تو در حد قدرتی که کان و آهن هم در برابر تو مقابلت نمیتونه وقتی تو تصمیم گرفتی آهنی که گوهر رو در کان بسته، باز میشه تو آهن ببندت، بکاندر، گوهر مسئله اصاسی اینه که آهن فائل این فعله رو دید تو آهن به بکاندر، گوهر تو شاده شود چون تو بستی کمر من قصد داشتم اگه یک کسی بگه این گلو بهش جایزه بدم ولی کسی نگفت خودم با جایزه سیابوش بیامد که میگه اینو سیابوش بیامد که کابوس میگه بعد از اینکه سیاووش صحبتش رو با پدر کرد و پدر موافقت کرد و سیاهوش رد بعد رستم میخواد به رستم میگه چی سیاووش بیامت کمر برمیان بالا میگه با کمر آمد یعنی به صورت رسمی سیاووش بیامد کمر برمیان سخن گفت با من تو شیر روح چنه بخواهد همین جنگ افسوس میگه داوطلب جنگ کردن با افسوس تو با او برو روی از وی مطال میگه خواهش میزن تو هم باش ببین. با عنوان مشاوره در اول و جهان فلبان چ بیدار باشی تو خواب آدم. میگه وقتی تو بیدار باشی من با دل راحت میتونم بخوابم چ ارمیده باشی شتابه وقتی تو خوابیده باشی من بد بودم چو بیدار باشی تو خواب آیدن چو عرمیده باشی شتا بایدن جهان ایمن از تیز شمشیر توست اینا دیگه ستایش گسترد جهان ایمن از تیز شمشیر توست سر ماه برچرخ در زیر توست یعنی ماه فرود مرتبهی توست پاین مرتبهی توست تهمتن به دو گفت من بنده هم. سخن سخان هرچه سراینده هم میگه من خدمت خوزارم از که بگی قبوله هم قبول میکنم سراینده جد سرودن یعنی عرصدن یا آغاز خوندن یعنی معافقه میکنم دیگه طبیز. تهمتن به دو گفت من بنده هم سخان هرچه سراینده هم. سی پناه و روان من است بچهش بوده دیگه بزرگش کرده بوده دیگه خیلی هم مهر داشته به سیاهوش اینکه علاوه بر اینکه سیاهش هم همه دوست داشتن رستم این از بچه گ بزرگش کرده بوده بیشتر دوستش داشته سیاهوش پناه و روان من است سر او آسمان من است موفقت روتم هم جلب شد تو بشنید از او آفرین کرد و گفت که با جان پاکت پرد باز شد اینجا گفتگوی با رستم هم تموم میشه و کافوس میگه که خب هم برو حالا رستمی که فاتح هفتان بوده رستمی که فاتح جنگ هاماوران بوده اینا همراه پسرش کرده پسری که پرورده دست رستمه دیگه هیچ مشکل نود بشه دیگه ظاهراً دیگه قضیه هیچ نقصی نداره دیگه یعنی همچی سپایی با یه وقتی میره که کارا با درست میشه اما خدا چیزی دیگه میخواسته آماده شدن دیگه بر آمد خون روشیدن بیا آمد سفه بعد سرف را پوست گفتم توست به سرش نوبره پدرش شاه ایران بوده که نوزر هم به دست افراسیاب کشته شده و در شاهنامه خیلی خیلی به اسم توس نوزر یعنی توس به سر نوزر خیلی میان برزم صفتی که برای توس میارن که در شاهنامه هم هست زرین کفش توس زرین کفش در حالی که بعضی سفت هست که برای بعضی پهلوان هم میارن و در شاهنامه نیست معلوم نیست از کجا آمدید مثلا گیبر رو داماد رستم و پسر بودرز رو که پقریبا دو پومین پهلوان شاهنامه از لعاوی شهرت. خیلی جوزه وده بالای پهلوانانه معروفه به گیب علف چشم علف و تمام نقال های ایران همه جای ایران گیب رو بشمه این گیب علف چش علف این معنی که میدونید مردمان که چشم آدم گرده و لاغود میدونید که باز و میشه نور که کم باشه مردم های که گشاد میشه وقتی نور زیاد باشه تنج مردمان که چشم گربر اگه ببینید به صورت یه خط اینجوری باز میشه و بستن. میگن گی به علف چه؟ یعنی مردم که چشمش مثل مردم هایی کشم گرگرده اینجایی حالا صحیحه صحیحه بعد ولی لغم زرین برای توس چیزه در خود چانمه آمدیم بخش دوسته برای که شما زرین کش بخش دوسته کفش های خیلی شکی کم زرین یا تلاش رو میداد یک کارت من روی بود. حتی یک البته این از آنومه گرفست هم بود معاونه وزد دادوستری بود از میتونی توکر زرین برای آمد خروشیدن نای و کوست بیا آمد صفحبت سرف راستوست به درگاه بر انجمن شد صفح در گنج و بوک شادشاه این گنج رو و گنجینه رو و خزانه رو وقتی میگن آدم ممکن فکرهای مختلف بکنه به خصوص با این فیلم هایی که دیده اینا میگن نشون میدن بلینجای رو فکر کنه که همجور کربا مثلا این بر یاگون شیسته اون بر علماس شیسته اون بر نمیدونه هم چیزی یک،, یک شرحی در دارابنامه هست که اونجا میگه که به یک کسی گفتن که این کارو بکن گنج بهت میدیم باید اون کار که بعد پادشا بهش میگه تو عبله بودی که این کارو کردی گفتن گنج میگه گنج تو تا ما این برداری بس میگه بردنی سر یه جایی یه گودالی مثلا خربارها ترها رو زب کردن یه تیکه اونجا گذاشته بودن که برای بس خواستن بیان و بکنن و سکه بزنن دیم گفه این این یکی دوم این که بسیاری از این خزانه ها خزانه های وسائل پادشاهی بوده از درجه اولش سلاح شمچی رو نیزه و سپره برای این که سهرباز وقتی میخوان روانه میدون جنگ کنند و وسایل داشته میشه این وساله باید حاضر بشه، اینکه که نمیشه امروز سفارش بدم تا برم این باید حاضر بشون. این از که گاهی در اینجاها یه مختصری راجع به خزانه پادشاه و اینکه چیا در خزانه پادشاه بوده یکی از تحقیقهایی که میشه در بوله کرد، همین هم هست در خزانه شاهان چی رو میدهند هم و همینجه میده به درگاه بر انجامن شد سپاه در گنج و دینار شاه هم پول نقد هم گنج ز شمشیر و گرز و کلاه و کمر هم از خود و در و در یعنی هم از خود و در و سنان و سنان سر نگذر مای که تیز که سر چوب میتوندن سنان سنان و سفر سفرم معمولا از چرم خیلی کلفت گاب از همون چرمای کلفت تخت کفش میکنن درست میکردم این تی رو میتونیشه بگیر ساهنین بوده، انواع افثان بوده ولی بیشتر، اون چه دست مردم میگذن، بیشتر چیزی زیره؟ تنشون میکنند، در سفر جلو تیر میگذن به گنجی که بود جامعه نابورید. این یعنی توپای پارچه، او راه پارچه جامعه نابورید، یعنی پرستاد نزد سیاوش کلی کلید همه این چیزا رو پرستاد که برو هر چقدر مفاد برد که برخان و برخاسته کت خدای تویی میگه هم بر سفره هم بر مال و انبال خدا تویی چی؟ خود خود خلاه آهنی بوده که سرش رسن کلاه خود خود که برخان و برخواسته کرد خدا توی ساز کن تا چه آید ساعت. یعنی هر چی می‌خواد بعد آماده شد کرد از آن نامداران صبار دلیران جنگی ده و هزار توجه میکنید که گفت افراسی چقدر صفحات داشته؟ هزار سیاه باشد دوازه هزار کد <تصفح> کدش به چه مهمه؟ نه گفتن اینو قبل کد كد و کده پیشاونده یا پساونده اگه به صورت کده بیاد پساونده، مثل می کده، کده اخیرن دانشکده هم ساختن این لفظ دانشکده رو ملحو شعره بحار ساخت مجلهی داشت به نام مجله دانشکده آنون اون پیش از اینکه که رو بگن دانشکده مجله دانشکده رو منشه میکردن بعد آمدن یونیورسیتی رو گذاشتن دانشگاه و فکولتی رو گذاشتن دانشکده اخیرن اگر پیش از اسم بیاد به صورت کده مثل کت خدا و کت بامی هر دوتا اینا معنی اتاقه مکان، پسابند مکان. می کده یعنی محلی که درش می میخورن بوت کده یعنی محلی که درش بوتو گذوشتن دانش کده یعنی جایگاه دانه و که خدا که خدا <تصحن> توجه دارید که قدیم حتی در دوره بچه ما خونه هرقدر مفصل بود و هرچی بود خانواده توی اتاق مخابیم ما چهار تا بچه بودیم و پیدر و مادر وقتی بچه بودیم همه توی اتاق تف... بعدی وقت خواهر می‌داختن و و تازه ما تو شهر بودیم خونه مثبتاً بزرگی داشتیم که بیرونی داشت، اندرونی داشت مفصل بود تازه این در ده یه دون اتاق زن و شوهر و وجه توشن که چی خر و نام که دارن میارن تا که تا وقتی که دختر میخواد شوهر کنه یا مرد میخواد زن بگیره. دیگه که نمیتونه که زنش هم بیاد اونجا کاتی بچه ها و اون مادرش نمیشه که اصلا نمیشه برای اینکه باید سامت رو داشته که باشه هم خرجی رو باشه زنی نمیشه دیگره. این است که اون تنها وقتی که یک اتاق تازه در نظر میگیرن برای این زوج آزه عروسی کرده صاحب اون خونه رو میگن کت خدا یعنی حالا اتاق برسید برای خودش داره و زن اون خونه رو میگن کت بانی پس کت شدن یعنی زن گرفتن عباید زاکانی میگه قلندر است مجرد عباید زاکانی حریف خارجی و مرد کت خدایی ایست یعنی زنگی است. ایست فرمقاولش هم ارسکن کت بانی کت خدا و کت بانی یعنی صاحب اتاق به همین دلیل صاحب ده رو میگفتن ده خدا علامه ده خدا صاحب لغتنامه میگه اندر همه ده اندر همه ده جوی نه ما را ما زنان که ده خدایی. یه یه این جو تو این ده مال من نیست برای خب ما ده خداییم و پادشه ها رو گفتن کشور خدا یه یه اما اخیرن چنان که میدونید مفهوم که از خدایی خود توصیح دهده کرده به معنی فرمان روای ده به کار میده ولی اصلش که از خدا یه این یعنی صحابی اتاق یعنی من و یک یوغت دیگه هم بر همین دمینه هست لاقل از تهران من نمیدارم جاهای دیگه هم بوده یا نه یه جایی سراخی داشتن تو خونه های قدیم یه جای کتلوی که مثلا دومت در دومت بود ساخته شد. ذغال می ریختن تو ذغال و خاکی او نیست. صوف زمین صنو. می ریختن این تو. اینو چندان چتی ذغال. چتی ذغال. یعنی همون محل ذ. هم کداس، کده و چتی. و در نویبایی ها ارد می آورن. این آدم می ریختن توی اتاق هماش. از یه از خارج آرد نیم نیختن تو اون اتاق اتاقم اتاق ها میشه کتی منی کتی حال چرا اون تو برای اینکه نونبایی باید پختش معلوم باشه دیگه روزی چقدر آرد می و چقدر نون میشه این تا بفرمان دخلش چقدر میشه شه چقدر مفارجش چقدر مفتی که باقی ما نیچه یه آدم بود به نام پیشکار این کارش تو اون کتی بود می رفت اون توی یه ترازو بود و یه اتاق خالی خالی خالی, خالی توش آرد بعد این ترازو رو این آدم مم. لباس مخصوص داشت که همه پر آرد می شد چیز می شد هم آرد می شد اون تو این آردار رو علک می کرد بعد میکشید، کشید می تو کیسه یا تو پی طلبی دواز در کلو کیلو در کلو که اشون رفتن برای اینکه معلوم بشه چند تا از اینا رو این نوبایی می‌پذیرن میزان پخت میزان اورت معلوم باشه اون وقت کاملا معلومه که از این مقدار آرد چقدر نون در میاد و این نون پولش چقدر میشه و اون وقت هم حساب میرسن هم اگ دوزیت سی کرده باشه اون ترازدار داره مثلا دوزی کرده میشه اینا معلوم میشه و همین که ده و خرج معلوم میشه ضرر کنه نمیکنه روزی هم که وقتی که که اجزای زیادتر است یه میگن پستایی پستایی ای خودتون میگن این پستایی همون کیسه ها و میگن مثلا یه پستایی زیادتر رفت یا دو پستایی زیادتر رفت یا یه پستایی کمتر رفت اون اتاق رو میگن کته و این کته همین کد و کده است و هیچ رفتی البته با کته موازندرون به معنی برنج و در رشت و مازندران بیلان برینج و آفت می‌کنند بدون روغن روش نگهن کتفلا کتفلا اون ربطی به این نداره، اون لفظ تبریه خب به این بیرونی که میرین شما خونه قریم بوده این جای که آقایی نهوناشون رو میریدن فقط جدا بوده خونه تخونه جدی خانمان حالا بالا، باید ببینیم تا بفهمید و من از توضیح الان برای دیدم و حت هنوز خونه هایی که بیرونی اندر میداره در شهر سنامه یک حیات بزرگ قدیم بود که سه طرفش هم ساخته همون یک طرفش طرفی که روی شمال بود چون هیچ وقت آفتاب نمیگیره اون یه طرف فقط دیوار میتونی طرفی که روی جنوب بود از همه بهتر بود در تهران رو میگم ته و یه دیگه خوب پرمونم برای اینکه زن سون تا آفتاب میگره به تابیسون اصلا آفتاب میگره دو طرف دیگه رو شرق هم آفتاب رو بود ولی ای این بود که تابیسونا آفتاب ناراحت میکرد سه بریش رو خلاصه ساختامون میکردن. حیات رو معمولاً چهار گوش میگرفتم سه ورش ساختمون ساختامون یه طرف دیوار بعد جلو این حیات این حیات مثلا اگر 600 متر بود یا 700 متر جلو این حیات هم یه حیات کچیتری بود که مثلا 100 متر بود 20 متر بود دوسته تا اتاق بود که در خونم توی این حیات جلو باند اینه به بیرونی بیرونی فقط برای خاطر آقایی اونم خانم آنه نبود البته اونم بود جزه کار ولی مطلب اینه که مثلا را فرض که یه ده هرکسی عربا وجود داشت که این اصلا با خونه کار نداره با آقا کار داشت مثلا میخواست بیاد حساب کن حساب دقیقه حساب که مثلا آقا بعد از کشتارگاه باستش می آوردن گوشت یه هفته بعد شب باید بیشینه حساب یا مهمونایی باز می‌مودن که به خانواده ارتباطی نداشتن با آقا کار داشتن، با افسام عربا با حاجه داشتن، سوال داشتن می‌مودن که آقا کار کن درست کنه مرد عالی بودن سوال کنند آخوندی بود که کار محضر و عرض و ازدواج و طلاق رو می‌مود اینا،, اینا با زن و بچه بابا که کار نشتن که اتاقی که درش توی بیرونی باز می‌شود و ارتباطی هم به اندرونی اونجا بود. دیگه به هر کسی وب بعد هر کسی اتاق مثلا انتظار داشت، دکتر بود هر چی بود، اتاق انتظار داشت، اتاق ندونستم و دفتر خود اون آقا رو داشت، چیزای دیگه, دیگه داشت، اون چیزهایی که با مردم خارج سر و کار داشت، اینا رو می‌ذاشتن تو حیاط بیرونی. بعد مثلا اشدایم بود که دو طرف تو طرف اون مثلا فرض کنید که آبنبار رو طوری ترتیب می‌دادن که هم یک شیر در بیرونی داشته باشه، یک چیز در اندر داشته باشه. هم از اون راهشون آب بردن، هم اینا و با هم کاری نداشته میشه امسال این نه مثلا. اگر خیلی علاقمندین به این مسائلی کتاب خیلی درجه اولی هست در این به نام شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری ایران در دوره قاجار. مال عبدالله مستوطی احتمالا هفتاد سال کتابی به این خوبی در ایران نوشته تمام اون چرا راجب جزئیات و کار مردم لااتا، جاهلا، تزیخونی، روزخونی، نمیدونم تا خمربازی و هر چیزی که میخواید، این کتاب خیلی هم کتاب جالبی که گیریم درست کن، دیگه زمین نمید. ها، ارز که، که برخان و برخواسته کت خدای تویی. ساعت کنتا چه آید؟ ساعت هزار داشتن می گفتن مساعت هزار در داستان وحرام چوبین در تاریخ تبری که این چاف شده به ساعت جزده شده هست خیلی جالبه. میگه که وحرام بخی که می حاست جنگ و حیات لوتور کنن نا گفتن خب هر لشگم به اینا برداد گفتن من دوازده هزار سوی بیشتر چه اون؟ ساعت هزارم دیگی سهزارم کفت نه انبوهی لشکر هیچ دلیل چیز نیست و اتفاقا اداره کردن لشکر انبوه و نظم دادن این فینات بسیار سخت کرده و اگر کسانی باشن آزموده باشن و برزیده باشن و همشون کارآمد باشن و بشه درست کنترلشون کرد خیلی راحتتر میشه و دلایلی هم میاره. اون از نظر استراتژی و تدیک و علم نظام این که هرچی تعداد سپاه زیادتر باشه کار، ابداً درست نیست و مایش زهری اصلا نمیدونیم یعنی توجه نمی که نه اینکه ندونیم، خیلی ساده است تمام این لشکریان روز سه دفعه باید با او. <تصفح> اینا باید آقا این ها باید پراهم شه کلاش با دوشن، حالا اونو خالی، اونو پنیم ولی سه بار باید با یه باید باید باید خورن شب باید بخوار آب میخوان آقا اینا شوخی که نیستش که بعد لشکری که از این وردان و مجل این کی بهشون میرسه چیکار میکنه آسون نیست فقط زبون آسون میاد حرفش اینا رو هم کردن نرخ کردن موازه بودن که دشمن نفهمه خبر نیاره یعنی خبر نگیره از اینا اینا طوری برن که بتونن دشمن رو قافل کنن و, و و و و هزار چیز که ما تو تاریخ می میخونیم دو کلمه که نادر اشکر کشیم که هم دفت آقای کلمه ندیم، به این آسونی نیست حدیلیه که اینه که میگه که دوازده تا گذین کرد از آن نامداران سوار دلیلان جنگی ده هزار هم از پحلاوه گفتن و یعنی شهر قبلا گفتن، هم از پحلاوه پارس و کوچ و بلوچ بلوچ است که حالا همه هست در بلوچستان هستن، کوچ هم است نظیر او که اونجاها بوده، زه گیلان، جنگیج رو دشته سروچ اینا هم جه که مردم گیلان مردم کوپایه های گیلان با که رشدی رو میگن که سست اونطورن ولی به عکس مردم کوپایه گیلان بسیار جنگاور بودن و اونا همون نواهیست که دیلم و دیلمان بهش بیگن و دیلمی ها خیلی خیلی مردم جنگ بودن همونطوری که مردم کوستپایه مازندران همونطور سوارکو و اینجاها تمام مردم جنگی درجیه کنید بیگه دوازه زادت که از جاهای مختلف سوارای برزیده با ارزش انتخاب کرد سپرورد پیاده ده و دو هزار سپرور یعنی سپردار کسی که با سپر دیره مبارزه ده و دو هزار گذین کرد شاه از در کاردار از در یعنی شایسته و سزاوار از ایران هران کسی گفزاده بود دلیل و خردمند و آزاده بود گفزاده یعنی پهروانزاده به بالا و سال سیاهوش بودند همه اون کسانی که تقریبا همسن سیاهوش بودند کردمند و بیدار و خاموش بودند همراه سیاهوش کرد بعد شرح چیچونه زگردان و جنگی و ناماوران چون بحرام و چون زنگه شاوران بحران هم پسر برادر گیب بوده زنگ هم از پهلوانه همون پنج مو از ایرانیان برف راختند اختر کابیان اختر یه معنیش درفشه اختر کابیان یعنی درفش کابیان درفش کابیانم لابود میدونید که گفتن که کاغای آهنگر یه چرمپارهی پیش پیشوند چرمی داشت بعد که خواهد سورش کنه و ضد به زهار این پیشفند رو کرد سر چرمپارهی به عنوان علم گرفت دست رفتن و ما هم شدن، پیروز شدن در نتیجه این رو به فال نیز گرفتن و شد این افتر کاغیان یعنی مال کاغه و بعدها این رو در این چرب و در گوهر گرفتن و در زر و در گوهر گرفتن و هر کسی آمد یه تحضینات و چیزای زیبایی های تازه، بهش اضافه کرد و این رو معمولاً در جنگ ها جلو می بردن و نشان تیزید اینی که میگن دست عرب آفتا واقعیت واقعیت محروم تو گاهو کتابی داره به نام به نظرم آناهیتاست به نظرم تو آناهیتاش این داستان افتر کابیانم مفصل بید حقبالونم چی میم